پاییز آمده است که خود را ببارمد، پاییز لفظ دیگر من دوست دارمد، برباد می دهم همه بود خیش را یعنی تو را به دست خودت می سپارمت. باران بشو، ببار به کاغذ، سخن بگو، وقتی که در میان خودم می فشارمت. پایان تو رسیده گل کاغذی من، حتی اگر خاک شوم تا بکارمت. اصرار می که مرا زود تر بگو، گاهی چنان سریع که جا می گذارمت. پاییز من، عزیز قمنگیز برگریز، یک روز میرسم و تو را می بحارمت. سلام من مستفام و اینجا رادیو هجدهه بنفشه زرد و قرمز و سبز و نارنجی پاییزیه و شما به اپیزود نهم از فصل دوم اون گوش میدین دخترکی که هجدهه بنفشه و از غذا یک سال دیگه هم میتونه کفشای تختقی سفیدشو بپوشه و خیرچ خیرچ برگای خوشگذیر پاش لح کن. اینجا رادیو هجده بنفشیه که حالا با اومدن پاییز دوست داره امسال دیگه غمگین نباشه هرچند که پاییز بوی مرگ آقا جان ها رو میده و بوی قربت نبودنها. اینجا رادیو هجده بنفشیه که دوست داره امسال دیگه پاییز آخرین فصل سال نباشه پاییزی که قول داده به قولش وفا کنه و شاد باشه و شادی بیاره و خوب باشه و مهربون. رنگ چه خوش رنگ پر صدای قشنگ چه قشنگ. زری خلوچل نبود ولی همه بهش میگفتن زری خله ولی زری میدونست که خلوچل و دیوونه نیست آخه ننش میگفت ننش که دروغ نمیگفت ننه ها همیشه های خدا راستشو میگن ننش تنها کسی بود که زری رو میخواست آقاش یا ذری رو می زد یا مینداختش تو انباری. مثلا اون دفعه که برای اختر خاستگار اومده بود. آقاش گفته بود نیای جلوی مهمونا. آقاش می اگه ذری رو ببینن با ما وصلت نمیکنن و فکر میکنن همهمون هممون عقب افتاده ایم. ذری دلش میخواست ببینه اختر رو وقتی چای میبره. بره. آخه ذری آرزوش بود عروس شه. از لای در نگاه میکرد ولی یهو پاش گرفت و افتاد وسط اتاق. آقاش اونقدر زدش که دیگه زری گریه هم نمیتونست بکنه یا اونباری که اول مه شد و زری دلش خواست با محمد و احمد و فاتی بره مدرسه محمد بچه داداش بود و فاتی و احمد خواهر و برادرش اون موقع هم آقاش زدش زری عادت داشت به کتک خوردن اون هفته خواهر و برادر داشت جز اختر باقی از اون بزرگتر بودن اون شبیه که گوشه ای انباری خودشو جمع کرده بود یاد ننش افتاد. ننش پارسال مرده بود درست یک هفته بعد از پاتختی اختر. اون روزی که عروسی بود و زری سرما خورده بود ننش وقتی داشت دماغش رو میگرفت و با چایی و پنبه گوشه چشاشو که قی کرده بود و تمیز میکرد بهش گفت طفلکم یه روزی پادشاهیم میاد و تو رو با خودش میبره اینا قدر تو رو نمیدونن بی زبونم. فکر میکنن تقصیر توی که ایجور شدی ولی من قدر تو میدونم زری یادش میاد که همیشه ها ننش میگفت که پادشاه پاییز میاد و زریو با خودش میبره میبردش توی قصر بزرگ که توش همه رنگای عالم هست ولی زری اونجا میشه ملکه رنگا ننش میگفت زری ملکه ی کل رنگاست اون شبیه که یه یهو ننه از تب و لرز مرد آقاش گفت که تقصیر زریه آخه ننه از زری اون مریضی رو گرفته بود و خوب نشده بود ننه که مرد زری تنها شد پاییز بود که ننه مرد مگه ننه هم دروغ میگن مگه ننه نمیگفت پادشاه پاییز خوبه و داماد اون پس چرا ننه رو خوب نکرد پس چرا ننه رو با خودش برد این موقع ها بود که پاییز اومد. آخه زمین گرده و خیلی خیلی بزرگ. خودشو هم که بکشه هر سال فقط چند روز و چند ساعت و چند دقیقه و چند ثانیه بیشتر این نمیشه. یعنی نمیتونه که بشه. شاید زمین اگه اندازه اخترک 612 شازدجان کوچولو بود پاییز میافتاد. پس فردای بهار شایدم پستر فردای زمستون میشد تابستون اون موقع بود که دوباره نیاز میشد به یک آقای نجم و دولخانی که بیاد و خودش رو بکشه و یه تقویم تازه درست کنه فقط من نمیدونم اونجوری مح و خورشید و فلک فرصت کافی پیدا میکردن که در کار بشن و گل و سبز و برگ سبز و قرمز و آبی و بنفش کنن البته من به عبرا اعتماد دارم. اونا در چند ثانیه میتونن همه جا رو سفید کنن. یا که یک سیل پدر مادردار راه بندازن. پس خیالتون از زمستون راحت باشه. ولی کار برای پاییز خیلی سخته. این همه رنگ و خشکی و میوه و اینجور چیزا من چه بدونم؟ تازه شما فکرشو بکنین اونجوری دیگه ما سه ما نداشتیم و یهو میشد بوی ماه مهر و مدرسه و باغ ها پس چقدر خوب که ما یک کره آبی خاکی هوای یخی داریم که از غذا خیلی هم بزرگه و جینگیل بلا. باید. یک سال دیگه گذشت و آقاش بد اونختر و نامهربونتر شد هفته خواهر و برادراشم انگار زری رو نمی دیدن. انگار اصلا زری وجود نداشت آقاش صبح کلی سهر میرفت و شب برمیگشت. زری حتی تو کوچه هم نمی‌رفت. آخه بچه های محل دورش میکردن و به پیراهن گشاد و روسری کجش می خندیدن و هش میکردن و می خوندن. زری خله، زری خله یه روز آخرای تابستون آبجی بزرگی زری اومد خونه برای زری یه لباس آورده بود براش کمپوت سیبم آورده بود آخه زری آشق کمپوت سیب بود زری از محبت های اونا می ترسید آخه هر وقت از این کارا می بعدش اتفاق بدی برای زری می مریم به زری گفت امشب قرار مهمون بیاد خونه هر کی ازت هرچی پرسید جواب نده فقط اگر کسی ازت پرسید کجا زندگی میکنی؟ بگو توی یک آسایشگاه بزرگ و قشنگ زری دروغ نمیگفت آخه ننش گفته بود دروغ بده ننش که دروغ نمیگفت پس وقتی ننه میگفت دروغ بده؟ یعنی بده زری که تو آسایشگاه نبود زری تو خونه بود زری گفت زری تو آسایشگاه نیست زری تو خونه است مریم محکم دست زری رو گرفت و با تمام قوا یه نیشکون حسابی ازش گرفت و گفت ننه بدبختم و که کشتی آقای بیچاره رو هم میخوای دقمرگ کنی نمیذارم آقا میخواد عروس بیاره خاستگاری هم رفتیم امشبم دعوتشون کردم خونه صدای نه تو در بیاد جوری میزنمت که سغت بشی و همه دنیا از شرت خلاص بشن هفته بعدم میبرمت دیوونه خونه شاید آقام یه نفس راحت بکشه از دستت زری گفت زری دیوونه نیست زری خل نیست زری دیوونه نیست مریم عصبانی شد و با شلنگ چنان زد به ساق پاهاش که مثل اسبی که پیشو بزنن از وسط تا شد و با ناله خورد زمین چیزی تا صبح فردا نمانده مایی موسد قصه نخنده باید از شهرتی ربوجریزی باید باغ سهاد را آمیزیم من از دست خمید من از دست خمید از چه مشکل ببرم بردم چه مشکل چرخ بسی لیل و نهار آوردی گه فصل خزان و گه بهار آوردی مردان جهان را همه بردی به زمین نامردان را به روی کار آوردی هر از چشمان تو شکلی دیگر برمیخیزم امروز هم چشمان تو چطورون است این اونیز در شهر موی تو است تو هر چه ای جان میگیرم. شب شد و عروس تازه و خونوادش اومدن یه دختر ترگل ورگل که قرار بود بیاد و بشینه جای ننه محسوم زری. قطعا اونا دخترشونو داده بودن به پول بابای زری وگرنه دلیل نداشت دختر جوونشونو بدن به یه مرد که توی اون سن ساله ولی تنها شرطشون این بود که زری نباشه مریم تو جلسه ی گفته بود زری خیلی وقته که رفته آسایشگاه روانی زری از شدت دردپا توی اتاق افتاده بود و از ترس باز خوردن توی دلش آروم عشق میریخت پاییز بود صدای بچه ها از توی مدرسه اون ور کوچه میپیچید توی حیات زری ساکش تو دستش بود اون دستش تو دست مریم برای بار آخر کل حیات رو نگاه کرد کل خونه رو همه جا رو توی مخش ثبت کرد می ترسید یادش بره جاهایی رو که با ننش بازی می‌کرد. در تمام راه از خونه تا آسایشگاه مسیر رو توی ذهنش ثبت کرد که یه روز باز برگرده به خونشون. روزی که عروس شده و مدرسه میره و همه دوستش دارند مریم کارهای سبتنام زری رو انجام داد و بعدش هم رفت بدون حتی نگاهی و یا کلامی توی آسایشگاه بیشتر آدما جیغ میکشیدن و کاره بد انجام می‌دادند کارایی که ننه به زری گفته بود بده مثل اینکه رو کسی توف بندازی یا کسی رو گاز بگیری یا گربه های آسایشگاهو عذیت کنی زری دیگه حرف نزد چون غمگین بود و دلتنگ ننه و خونه دکتر آسایشگاه گفت زری به یک لالی عصبی دچار شده زری شد لال پاییز توی اون باغ بزرگ خیلی قشنگ بود زری باز یاد پادشاه پاییز افتاد که قرار بود بیاد با خودش ببرتش به یک قصر بزرگ یه مرد مهربون که یک شنل بلند قرمز داره با یک تاج زرین و بزرگ اون روز وقتی اختر اومده بود دیدنش و شکمش باد کرده بود زری فهمید که آبجیش بچه داره اختر لباس سیاه تنش بود به زری گفت امروز سالگرد ننست یه ظرف غذا هم داد به زری گفت این غذای مراسم ننست زری دلش پوکید دلش برای قبر ننه تنگ شد حسودی کرد به اختر به اینکه همه دوستش دارن به اینکه مدرسه رفته به اینکه عروس شده و بچه داره و از همه مهمتر هر زمان دلش بخواد میتونه بره و رو قبر ننه یه دل سیر اشک بریزه زری خلوچل و دیوونه نبود زری فقط زیادی خسته بود زری فقط زیادی دل تنگ مادرش بود صدای پا نبود، صدای تقط شکستن تو بود اورو خسته بود که من سرم هنوز رو تو بود صدای پای تو که تو تابستون شبیه این آدمایه که خیلی عجله دارن. اونایی که همیشه و حتی روی پله برقی هم راه میرن که چند ثانیه زودتر برسن. برعکس تابستون پاییزه. پاییز هیچ عجله ای نداره برای تموم شدن. پاییز شبیه این بچه درس خون ریلکساست که با خون سردی به همه اهدافشون میرسن. پاییز خیلی صبر داره. اگر نداشتین صبر و حوصله رو که هر کدوم از برگای رنگ نبودن، این از سقه نیست. این از شدت حوصله است. پاییز برعکس زمستون خیلی با حوصله است. زمستون شبیه این پسر بچه بی حوصله که یه هم میزنن همه چی و چپه میکنن. بهارم که مادر همشونه سراخر میاد و با کمال نظم و تعادل همه چی رو درست میکنه میبینین؟ مامانا همیشه ها همه چی رو درست میکنه دو به هنوز, خنده هاش. سر به هنوز تو به تو اون شب برگر آورد. چون دیده بود ننش خدا رو به برگای زردش قسم میده زری برگای زردو گذاشت زیر بالشتش و خدا رو به اونا قسم داد که دیگه امشب به پادشاه پاییز بگه که زری منتظرشه زری به برگا گفت که به خدا بگن که زری باهاش قهره بعدشم به یه برگ کوچیک گفت که به خدا بگه که زری خدا رو به اونا قسم داده زری همه ی اون برگا رو بچه های خودش میدونست زری خوابش برد. و شب بود که یهو از خواب پرید از صدای باد دروبرش نگاه کرد همه خواب بودن زری با خودش گفت که چقدر اینا خوشخوابند که صدای بادو نمیشنفد رفت که پنجره رو ببنده ولی یهو ننه شدی، با چشای خودش ننه شدی. زری اونقدر خوشحال بود که یادش رفته ننه مرده ننه بغل کرد کلی باهاش حرف زد از بیمحل لیا و کتکای آغاش گفت از مریم گله کرد که آوردتش اینجا از اون دختری که جای ننه رو گرفته ننه زری و بقل کرد و گفت حالا که تو شدی عروس پاییز، همه شون بهت حسودی میکنن و حسرت میخورن که کاش با مهربون بودن بعدشم یه تور سفید از زیر چادرش در و انداخت روی سر زری زری اون شب با کلی بزن و به بکوب و تشکیلات رفت به قصر پادشاه پاییز. بدون اون ساک مشکی که توش چند از پیراهن گلگلی گلگوشاد و روسری و خرت و پرت بود اون شب یه عالم دختر خوشگل و مهربون موها و صورت زری رو درست کردن و یه لباس خوشگل و اندازه تنش کردن زری حالا خوشبختترین دختر روی زمین بود چون هم مادرشو داشت و هم شده بود ملکه یه قصر پادشاه پاییس قصری که توش همه براش کل میکشیدن و آواز می خوندن. من از جنگل شالها گذشتم قبار قروم بروی درختان فرو می نشست و بعد قریب ابوس از بره شاخه ها می گذشت و سر در بگ ها می گذاشت فضا و در چشم برگی که خاموش خاموش میسوخت نگاهی که نفرین پایی می چ حید خزان بود ح خزان بود فردا صبح اما وقتی خانم لطیفی اومد توی سالن دید همه جا پر از برگ های خشک و رنگی ولی همه پنجره ها بسته بودن خانم لطیفی کنان شروع کرد به بیدار کردن دخترها و هی غر میزد که حالا باید چند ساعت زمان صرف تمیز کردن اون برگا کنن وقتی رسید به تخت زری بیشترین برگ اونجا بود انگار اصلا از توی بدن زری اون برگا بیرون اومده بود خانم لطیفی زری رو تکوند ولی زری بیدار نشد. اولش عصبانی شد ولی کم کم ترسید. دوید و پرستا رو صدا زد. زری نبز نداشت. زری مرده بود. دکتر گفت. زری توی خواب سکته کرده. خونوادش رو خبر کردن. توی صورت هیچ کدومشون غمی دیده نمیشد تا وقتی که خانم لطیفی، همراه وسایل یه تور قدیمی عروس رو که رنگش نباتی بود داد به آقای زری و گفت این توی دستای زری بوده آقای زری اون تور رو شناخت اون همون توری بود که سالها پیش موقع عروسی رو سر ننه زری بود همون توری که باد با خودش برده بود و هیچ وقتم پیدا نشده بود شب از جنگل شاله ها میگذشت حرید شعرونه افتم در گوش برگی که خاموش میسوخت گفتم همسوزن چونین گردم در خود وسوس مپیچن چونین تهم در خود مپیچ که یار دست بی خیلی هستن که پاییز و دارن. خیلی اصلا پاییز و نماد عاشق شدن میدونن ولی خب وقتی عاشق شدن باشه اتومات بیزاری و دعوه و قهر و تنفرم پیش میاد پس پاییز همون اندازه که مورد پسند خیلیاست یادآور خاطرات بدیه برگی خیلی های دیگه پاییز فکر کنم تنها فصلیه که این همه از و تو دل خودش داده همین مدرسه رو در نظر بگیرین خیلی عاشق مدرسه ولی در مقابل مدرسه نماد زجر و بدبختیه برای خیلیا. بارون و رنگ و سردی و باقی غذایا رو هم میتونید تو همین فرمول قرار بدین ولی خب پاییز هنوزم که هنوز بوی مرگ و رفتن و نیومدن و نموندن و میده پایزی که داره سعیشو میکنه که حداقل امسال دیگه آخرین فصل سال نباشه از شدت تراژیک بودن اینجا رادیو هجده بنفشی بود که دوست داره مهربون باشه و شاد دخترکی که هنوز خیلی راه داره تا بزرگ شدن اینجا رادیو هجده بنفش بود و شما به ویژه برنامه پاییز 1395 اون گوش دادید ما رو در کانال تلگراممون با نام رادیو هجده بنفش با هجده عددی و بخش پادکست های تارنمای بیپتونز دنبال کنید را پا اگر زرد و پشمرده‌ای ولی دل به پاییز نسپردی چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده‌ای اگر داغ دل بود ما دیده‌ای اگر خون دل بود ما خورده‌ای اگر دل دلیل است آورده‌ای اگر داغ شرط است ما آورده‌ای اگر دشنه دشمنان گردنیم اگر خنجر دوستان گرده گواهی بخواهید اینک گواه همین زخمهایی که نش مرده ایم دلی, دلی سر و سری سر بزیر از این دست عمری سربل. سرد و پشموردی ولی دل به پایی نصبوردی چگال دانه خالی لبه انجره بر اسخترات تراک خوردهی سرپو اگر سرد و پشموردی ولی دل به پایی نزورده ایم چو گلدان خالی لبه پنجره برست خاطراته پرک خورده ایم اگر داغ دل بود ما دیده ایم اگر خون دل بود ما خورده ایم اگر دل, دل دلیل از آبرده اگر, اگر, دل اگر, خون دل اگر دل دل اگر خونه دل بود اگر دل اگر در دشنه دشمنان کردنیم اگر خنجره دوستان برده ایم گواهی به دیند که با همین که نش مرده ایم دلی سر و سری سر از این دست و به سر برده ایم دریسم ولاند و